بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله على سیدنا محمد و عالی و هو العلم الدرس التاسع البرزخ و الخامس المقاد، المعاد یعنی الحياة الأبدية الابدیت في یوم القیامه ما شما دا، کارخانگی داشتیم، چی چه بودن؟ آه خیلی آله در هنگامه های غیبر که فعلا هست درست هشتون رو خواندیم درست نهم رو می نه، نه، نه، نه، نه، نه. فعلا ما شما در غیبت به سر فعلا چی وظایف داریم؟ خب چند نفر آمادگی گرفتن؟ نه او خط که معنی آره وظایف ما خب پس آره آره, آره آدمای منتظر چی وظیفه ای داره شما به خانم از مصطفی اسنا ما روی که همراه خام محارفت چی؟ محارفت غلی رسول خواب خواب ادامه شان بولی امر علیه السلام درسته؟ خواب تمسوب به انسان و ولایت احرابی ولایت انتظار فرشت خواب تحزیب و سرار فردی چهار خواه؟ خواه؟ ششون ولی امر ولی امر ولی امر دعای دعای و دعای خب دوازده مورد شما برشموردین درست شد آره. دیگه کسی دیگرای ما غیر از این دوازده مورد هست خب شما غیر از این دوازده مورد اگر هست این تا چند جای چند رقم گفتن یک جای 5 دونه گفته که پنج دونه است یک جای هفت نکته خلاصه که در یک جای در که ما خیلی عالی از شما چی نه نه مورد است. خب نه مورد پس شما بلندتر آن صفح کرده کهصد قابل دل همرهی اوست هر کجا هست خدا به سالمت دارش منت کی انتظار چیست؟ خواهد. از کجا بفهمی منتظر آقایم این زیبایی زیبای که دارگان معدیجل از دابارها از خود میپوس میخواند به دانشش باید به ها هم از منتظران واقعی اما مجب داها لااپه جاشرید باشند شکر کنید که این اشتیاق را در شما نیز قرارداد است وطوربر خلاصه می توانوان گفت منتظر واقعی کسی است که تمامتح موسفرات شراییت از انتظار داشته باشد. خا جز کی انتظاری میهمانی را می کشد می میکشد و نظافت خانه میفهماند لباس مرتب میپوشد و همه چیز را فراهم میکند تا بر محضر میرید میهمان و بهداری نمازجویی برای گمان انتظار امام زمان عج الله تعالی لحظه به لحظه با یک گونه منتظر بود که هر لحظه قبل از ظهور عقا بهوش آماده باشیم خا اهل گنا و دل بسته به دنیا نمیتواند نام خود را منتظر بنامد بعضی از وظایف منتظر واقعی را چون میتونن باعث مودی اعمال ما با شناخت امام زمان سلام ای امام عارفان خوب. بگم چیشان آجاوه؟ آجاوه؟ نه, نه یکی یکی باشم رکتیس. خوب. دو دوست داشتن عصب و محبت و ایشان. کلاسی کلاس نه فقط نامش رو بگید. دوم محبت بودم. سوم ایجاد سنخیه. آه ایجاد سنخیه. آه. با چارم برای آماده کردن مرید جامعه برای ظهور امام زمان از به از و درگر کنم اصلاح ششم چی جامانه این در ششم شما؟ ششم ارتباط با حضرت از راه زیارت‌های ارتباط منتظر و دیگر. منتظران، دیگر به ایجاد روحیه انتظار و دیگران ششم، ارتباط با از راه چون دعای نجوه آل یاسی و دعای عهد فرج هفتم صدقه دادن برای سلامتی پسر فاطمه هشتم سبر و شکیبایی در انتظار و امید داشتن به ایشان نهم ایجاد آمادگی دائم رزمی خیلی عالی خب ببینیم خیلی نکات کشنگی بود خواب؟ آه, یک نفر به عنوان وظیفه کاری همین رو هم اطلاعاتی که جمع کردیم رو از همگی جمع کنم یکی یکی بر شمارند و در گروه بذارم که بی درو هم استفاده کنیم و باز هم می‌ذاریم چه وظیفه‌ای می گیره سوالی دادن ها سوالی آره شان که مصدف هست یعنی درست این معلومات رو که شما دیر قبل گفتید ولی همه معلومات را یک جایی کنیم آه باز آه چه کنیم؟ در گروه هم بگذاریم که دیگران استفاده کنند و در جمع خود هم اگر بیتونیم در قالب یک قاغص بنویسیم میسیم، چه میشه؟ خب کی وظیفه میگیرم که از همه جمع کنه؟ غیر از دیگر کسی نیست؟ خب پس شما یک، شما دو، شما سه، سه نفر همه اطلاعات را جمع کنین، سه نفر جمع کنید در یک کاغذ بین کاغذ را تحویل بدین به ایشان ایشان در گروه اینترنتی بگذاره و شما هم برای همگان باز کسایی که چشود بین میسن سه این شما؟ چی میتونم تدفیل که همانکت، اونه خد سانسیده در برد خیر اشکال ندارم پس نگاه کنه خانم حسینی فعلا تا زمانی که شما جمع نکردیم هیچ وزیفه ای نداره شما تا فردا را جمع کنین فردا بهشون تحویل بدین. صحیح شد؟ آره ان خب جمله جمله رو چون دیر نشه و ما ترجمه میکنیم یا یک نفر دیگه کسی خب دیگه رو ترجمه میکنه شما ترجمه خیلی شما. نه الله مؤجل فرجه بسم الله الرحمن الرحیم. خ اللهم عجل فرجه خدایا خدایا فرج ظهور آن حضرت نزدیک کن و سهل مخرج و خروجش را آسان بساز آسان و جان من انصار همرا ما انصار و انصر و یاران و قرارده. فرق بین نصرت و مقاومت رو کسی میدونم؟ نصرات یعنی پیروزی یا کمک به پیروزواری محاونت یعنی کمک همکاری آها آه مدرکاری آها آه درست چی شده این فرقی بسیار زریف یا کوچکی که دارد چیه؟ فرق بسیار کوچکیش یعنی یکیش به خاطر کمکی گرد که به خاطر پیروزواری ندیگر ندیگر خیلی باشاش نه خیلی قشنگ خوب یه چیز اشاره کردیم آه پس آه شما امو خط چی گفتیم؟ صور سنتس فردا ها فردا از شما خواهیم فرصت انشالله که فرق بین نصرت و معاونت چیست صحیح ان انشالله الله نصرت بنوز و بری ان شاء الله معاونت معاونت صحیح ان شاء خب پس بیاین درس امروز رو بخونیم از درس 3 البرز و القيامه الخامس المات این خامس منظورش چيه؟ پنجم اه پنجم از شي پنجم یعنی معاد اه پنجم از شي نه پنجم از اصول دين اه پنجم از اصول الدين معاد پس معاد يعني یعنی چيه؟ الحيات الابديه العب... للانسان داری. في يوم القيامه اه دقت كنن خب معاد يعني یعنی زندگي هميشگي برای انسان در روز قیامت یا اون هنگامی که قیامت بپا میشه مردم میخیزن جای خود خود قیامت یعنی قیام استادن و پا خستن وقتی مردم دوباره عود کردن خستن از یعنی از مردگی به زندگی عود کردن و قیام کردن و خستن دیگه هستن که هستن امیان حیاتم قیامت الحیات العبد یعنی زندگی ابدی عب... برای انسان در روز قیامت برای انسان بله در روز قیامت, در روز قیامت. برای انسان؟ انسان؟ هم. درست شد؟ ما در قسمت معاد در این جلسه راجع با دو نکته میخوانیم علیف علیف گوش بدین علیف عالم البرزخ عالم البرزخ عالم برزخ دیگه. برزخ یعنی چ ما نمی‌فهمیم و هو الحیات فی القبر بعد الموت این احسان این عالم برزخ عبارت از زندگی است که در قبر بعد از مردن به وجود می آید خب ما یک در گفتیم شما ترجمه شد خودشون بین میسین برزخ عبارت از زندگی است که در قبر بعد از مردن به وجود می آید آه عبارت از زندگی است که در قبر بعد از مردن به وجود می آید به وجود می آید. سهی شد؟ ببین خود کلمه دقت کنین حیات یعنی زندگی فی، در قبر که قبر، بعدم بعد، موت مردن سهی شد؟ زندگی در قبر بعد از مردن یعنی می خود ترجمه کلمه به کلمه شید دیگه؟ زندگی در قبر بعد بعد از چسندی وانم وانم دوست. سه دوست همون سه. دوست؟ حیات زندگی فی در قبر قبر بعد بعد, بعد موت مردن. بدون ال بدون جسد فعلی. یعنی در قلم قبر اینطوری زنده نمیشندیگه که. درست جسم ما مرده هست بعد چند مدت دیگه از بین میره درست بعد چند مدت؟ و زندگی ها زندگی بدون جسم فعلی ما و شما زنده میشه درست البته اون مردن خودش وقتی که آدم روح آدم از جسد بیرون شد دیگه این نیست که خود روح هم مرده باشه زنده هست دیگم توره. منطور وقت این جسد داخل قبر رفت و اونجا بند میمانه دیگه. مثل این میشه. برسو؟ کتاب سیاهات مرده که آدم به دنیایی که که باز قبر میکنه رو مرده تاوست که سود ایسا فیل دمیده او یک نکته ای داره ها ما یک روایت داریم می که قبر یا باقی از باقی های بهشت است و یا خدای نخواست چاهی از چاه های جهنم متوجه شدیم؟ که این قبر باقی از باغ بهشت یا چاه از چاه جهنم در جسمی که نیست دیگه جسم آدم اونطوره هست روحی روحیست مردم در عالم برزخ یا در عالم قبر به سه گروه تقسیم میشن خب؟ یک گروهشان آنمو به هیشتی باقی از باقای بهشت. یک گروهشان آنمو جهنمی آنند دیگر. یک گروه دیگهشه مثل که آدم در خواست آنمو تطیرند <تصحیح> <تصحیح> صحیح شد؟ آدمی که خواهو میبینه چرا قمیست درست؟ یک گروه اینطوریست در روز قیامت، وقتی مردم از آلم قبر بخواه میخیزن، فکر میکنه که یک زمان بسیار کمی تیر شده یک زمان بسیار کم این در حال است که خیلی زمان گذشته است آره، پس بنابراین قبر یا آ... باقی از باقهای بهشت، یعنی آلم برزخ یا باقی از باقهای بهشت است یا خدای نخواسته او طرفش یا بین آردویش دیگه این ای بین آردویش که شد تا هم بوده آره یک حالتی همطوره این خوالود داره درسته ما شما در رجعت هم گفته بودیم که آدمای خیلی خوب زنده میشه یک آدم خیلی بد زنده میشه در همه دنیا دیگه دو آدمای میانی دیگه زنده نمیشن. آدمی که فقط گموچی خود به برنامه آره بود درست شد و یزیل متوجه شدیم پس عالم برزخ یعنی عالم قبر فهمیدیم آره در اونجا با جسم فیزیکی زنده نمیشیم ولی روح ما همه اثرات یا نتیجه کار ما و شما را میبیند یا در بهشت است یا خدای نخواست او طرفش درست؟ یا در بینش با علیف عالم البرزخ با عالم القیامه عالم القیامه عالم رستاخیز عالم رستاخیز و فرجم معاد به معنی فرجام بنویسین خشنگ تر فرجام میشن آه فرجام بیمسین معنی فرجام میتونم تنها فرجام معاد به معنی فرجام بنویسین خشنگ آره معاد الخامسو المعاد آلم القیامه یعنی چه؟ عالم رستاخیز؟ برس آ رستاخیز کدوم بالا خیزت؟ آره. با منی خیز گریخت. سعیشون خورشیوی کردن. عالم القیامه یعنی عالم رستاخیز. خب این عالم قیامه چطور است؟ و هو الحیات فی یوم القیامه بالجسد الفعلی در روز قیامه دادم با اینمی بدنش؟ در روز قیامه با جسم با جسم فعلی بله. و هو این عالم قیامت زندگی در روز قیامت با جسد فعلی هست. با با کلمه با کلمه گفتیم. و هو یعنی این عالم قیامت حیاد زندگی فی در عالم قیامت زندگی در روز قیامت هست با جسد فعلی. نویشتن هیچی نه، دنیشند زندگی نه؟ آه، آلمانی. آلم قیامت یعنی زندگی در روز قیامت با جسد فعلی و بعثه من القاب. هم؟ بعث برو. و بعثه، بعث به همی برندگ خانگو. برانگیختن یعنی آدم داخل قبر کی بود برانگیختن بیرون میشه خارج میشه بیرون میده خب یعنی بیرون دارم بعث به معنی برانگیختن آره, آره آره آره و بعثه من القبر و برانگیختنش از قبر از قبر یعنی آز, از قبر دیگه آدمی بلند میشه به تدیر دیگه به پا مخیشه درست یعنی بارنگ چند تا کلمه هست بین کلمات دقت کنین خب و هوناکه حشر و در آنجا حشر است کناکه در آنجا در آنجا یعنی چه روز قیامت منظور است اونجا حشر است بله در روز قیامت حشر است هشر یعنی چه؟ یعنی ما و شما همون دعا میکنیم که خدای ما رو با پیامبر و پیامبر پیانبر مخشور مخشور مخشور مخشور یعنی یک جا شدن هر کس هر چیز در عالم دنیا بسراشد شد با ما مخشور آره آره آره آره این یک نکته خوب اشاره شد بینن در عالم دنیا اگر یک نفر سگ را دوست داشته باشه در روز قیامت به اونم محشور میشه آره کلمه حشر ما محشور محشور شده بله محشور شده دیگه چیه در اونجا و حسابون؟ حساب, حساب خ میدنیم نه حساب کتاب دیگه و جننتون جنت نان آ ها ونور نعوذ بالله کتاب کتاب است بازرسی است اگه بنیسی باز رئیس بر از باز جنت معنیشه چیه؟ نار یعنی می گذرد نار زو بالله تعالا حساب یاد چی بفتن؟ بررسی بررسی همونه بررسی همونه بررسی همونه و نارون و جهنم آه و حساب بهشت و جهنم نه ببین در قیامت هش حساب کتاب دو جنت هسته نار برای یک اده دیگیشن نعوذ بالله تعالی من نار هست حس... چند شد؟ چار خب یعنی موارد هست بعد از, ای... بعد از موارد یعنی با حساب کتابی و وارد شدن به جنت و محشور شدن و همچنین نارش نعوذ بالله تعالی فیسعد المؤمنون مؤمنان سعادت من میگردد میشوند. می سعادت یعنی پس سعادت میشوند. المؤمنون یعنی مؤمنان. ف پس. فیسعدو سعادت من میشوند. سعادت؟, سعادت من میشون مؤمنان. خب این مؤمنان چطور کی هستند چطور سعادت میشن؟ میشوند هلدین آنهایی که عملو صالح عمل صالح داشتن آره هلدین آنها کسانی که بله آنهایی که سهیست درست عمل صالح در دنیا صالح در دنیا و جناه میشه مؤمنان کسانی که عمل صالح دارن ف دنیا در دنیا، بل جنّه سعادت من میشه با چی؟ با وارد شدن به با بهشت بل جنّه یعنی با وارد شدن به بهشت شدن به بهشت در دا دنیا دام عمل صالح داشته باشند با وارد شدن و بهشت کسانی که عمل صالح در دنیا داشته باشند با وارد شدن و بهشت تو عادت من می مؤمنان آنهای که عمل صالح در دنیا دارن با وارد شدن و بهشت ویشقل مجرمون و شقاقات مند میکردن می مجرمون شقاقات مند باد میشن بگو میشن مجرمان؟ خب این مجرمان چرا شقاوت من میشه؟ من الل... آه، الَّذین کانو، اینها بودن، الَّذین، یعنی همه مجرمانی که بودن، خب چه کار میکردن؟ آره، متاسفونم، عمل میکنه، بودن، داشتن که عمل میکردن؟ آره، سیعات را، یعنی بدی ها را بدی کارای بد میکردن کارای بد انجام میدادن شقواتمند میشن مجرمان الگزین آرها من آسرکان بودن این آنی انجام. رو نبا چی نشده؟ عمل میکردن بودن و عمل بودن اینجام میدادن چرای جرنوی هم؟ آنهایی که بودن و های بد رو انجام میدادن بابا بچیدن درسته بودن عمل میکردن آنجام؟ ام؟ <تصفيق> سیاهات و بدی ها را ها در کجا چونه میکردن؟ در دنیا میکردن برای آه اینها شقاوت من میشون با وارد شدن به کجا؟ به دوزه در جهنم آتش جهنم در دنیا برای جهنم برای درست خب سعی کنین حرف نهایی آدم از اینجا که می مردیم ما و شما خواب؟ خواب چه بگیم؟ حالا فرق نمونه آله یا شاو یا وقت کدام دیگه که می مردیم، دیگر فاصله ما و شما میفته روح ما با بدن ما تا روز قیامت منطقه ها اینا با هم ارتباط دارن اینکه ارتباط نداشته باشه ما شما حالت زندگی رو تجربه می‌کنیم در عالم برزخ یعنی عالم قبر بعد از عالم قبر و برزخ که می قیامت بپا شد از قبر بعث میشیم بپا قام می خیزیم. می خیزیم، بلند میشیم اونجا باید حساب کتاب پس بدیم بعد از حسابی و کتابی محشور میشیم با کسانی که باید محشور بشیم در خب بنابرین انشاءالله اهل ایمان وارد شدن و به هیچ سعادتمند میشوند چرا؟ چون عمل صالح در دنیا انجام دادند ولی اون دیگرهایشان هم باورد شدن به با آتش جهنم شقاوتمند میشن چرا؟ چون که سیعات رو در دنیا انجام دادن درسته؟ اینطوره انشاءالله خداوند مهربان با ما شما توفیق بده که جمله هم مؤمن باشه جمله اخلی ایمان باشیم و هم عمل صالح داشته باشیم اینجا خوب دقت کنیم بخوام دو نکته هست یکی الذین چه یکی فیسعد المؤمنون. کلمه ایمان داره یکی دگم عملو صالحا هست عمل صالح پس یکشون کفایت کنیم ده آنچنانی که باید باشد نیست هر دویش باید باشه خم. مؤمن بدون عمل صالح صد در صد در جهنم میره. مؤمن با عمل صالح من آره منطقه یک نقطه وجود داره بعد از که وارد جهنم شد اونجا که جزای رو دید آخر شد بهش میست. آره باز اونجا یک چیه هست غسل میکنه متاسفانه یک نشانه جهنمی بودن و پیشانشم میمانم آه. مؤمن وقت عمل صالح نداشت، حتما جهنم را یک بار زیارت مونه ولی بعد از اینکه به اندازه بده هایشی جزای خوردید میاید اونجا چشمه ایست آخراً یا چیست؟ اونجا غسل میکنه بدنش درست میشه، پاک میشه، فقط یک علامت در پیشانیشم تصفیحانه میمونه کل دیگه میفرمایید که کی یک بار رفته. بار خدا ان شاء الله بده که اونجا اصلا آره نارهی درست و الله علی سیدنا محمد و آله پاکان صلی